سبحان ربك رب العزت عما يصفون و على المرسلين المرسلین و الحمد لله رب العالمین السلام علیک ایوها النبي و رحمت الله و برکاته. السلام علی الامت الهادین المهديين السلام علی جميع بیا الله و رسوله و السلام علينا علی عباد الله الصالحين، السلام علی امیر المؤمنین السلام علی صدیغت شهیده السلام علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه اجمعین السلام علی ابن الحسین زین العابدین السلام علی محمد ابن علی باغر علم النبیین السلام و علی جعفر بن محمد بن السلام و علی موسی بن جعفر الکاظم السلام و علی بن موسر موسی الرضا السلام و علی محمد ابن علی بن علي الجباد. السلام و علی بن محمد الهادی السلام و علی الحسن ابن علی زکی السلام و علی الحجت ابن الحسن القائم السلام علیکم يا مولاي يا علي ابن الحسین ايها السجاد يا ابن رسول الله يا حجت الله علی خلقه يا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسطلنا الله و قدمنا بین يدي حاجاتنا يا وجي الله اشفع لنا انده الله شام شهادت مظلومانه امام سجاد علیه و السلام است به پیشگاه مقدس حضرت بقیه الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا، و همه شیعیان و پیروان و محبین مکتب اون حضرت و شما خواهران و برادران تسلیت عرض نموده و آرزو میکنم در زمره پیروبان راستینشون باشیم انشاالله. خب ادامه بحث همونگونه که مستهزرید در دهه محرم دو سال قبل در این مکان بحث کردیم که امام حسین علیه السلام در تحقق هدف انبیا چه نقشی داشتن دهه محرم امسال با همین بحث و پی گرفتیم که چرا هدف انبیا با اون صورت ایدئالی که مورد نظر انبیا بوده است که در رأسشون مقام ختمی مرتبت تحقق کامل نیافته آیا وعده انبیا نعوذ بالله دروغ است؟ آیا وعده انبیا امکان تحقق ندارد؟ یا موانع دیگری سر راه تحقق هدف انبیا قرار گرفته و ما در مرحله اول موظفیم این موانع را شناسایی کنیم مرحله دوم رسالت ما توان ما نقش ما در تحقق هدف انبیا آیا می میتواند مشخص شود و ما به انجام وظیفه بپردازیم یا خیر ارز کردم نسبت به انبیا و نبوت و وحی دو نظر کاملا مغایر در مرحله اول وجود دارد که ما جزء دسته دوم شدیم. دسته اول چه می گفت؟ وحی رد است، انبیا را نمیپذیریم دین را افیون ملت ها می دانیم. اصلا دین و وحی و نبوت نمی تواند برای بشر مفید باشد. خب اینا یه دستن دلائل بسیاری را در طول تاریخ معتقدین به مکتب وحی ارائه کرده ان. خود انبیا از زمانی که به رسالت الهی معمور شدن عدلشون رو ارائه نمودن معجزاتشون رو به مردم نشون دادند بینات فراوانی رو ارائه میکردند و لذا در قرآن کریم وقتی سخن از رسالت همه انبیا به میان میاد لقد ارسلنا رسولنا بالبینات مطرح میکنه اینجوری نبوده که یک پیغمبری بیاد بگه من پیغمبرم اما هیچ دلیلی بیانهی برای اثبات ادعای او وجود نداشته باشد و از بقیه بخواهد که بدون بیانه و دلیل ایمان بیاورید و بپذیرید نه اینگونه نبود لذا ما قسمت اول رو با توجه به دلائل متقنی که داریم این رو کنار گذاشتیم اما اومدیم سراغ دسته دوم بحث ما در دسته دوم بود آنانی که گفتن انبیا را قبول داریم وحی را میپذیریم نبوت مورد قبول ماست و ما برای سعادتمندی نیازمنده به وحییم باید سراغ انبیا بریم تابه انبیا شویم اما اینجا دیدیم دسته پیدا شدند نهله ها و گروه پیدا شدند که خود این دسته ها و نهله ها و این گروه های مختلف فکری در نحوه ایمان و معرفتی که نسبت به وحی دارند خود این مانع تحقق هدف انبیا می شود چطور در دو دستبندی کلی باز قرار دادیم دستبندی کلی یک و دو یک. کسانی که گفتن وحی آری انبیا را میپذیریم ولی وحی توانش حد است نه حد حداقل حد اقل نیاز ما را برای ما مطرح کرده است خب بقیه نیازمندی ها را چه کار کنیم اینا را خودمون باید بشینیم فکر کنیم سراغ مکاتب بریم اندیشمندان را دعوت کنیم از متفکرین کمک بجوییم به کمک آنان آن چرا که در وحی پیش بینی نشده و رسالت وحی نبوده ما به وحی بیفزاییم تا در اثر افزودن و زدودن کاستی‌ها و کمبودهایی که در مکتب وحی است ما یک جامعه سعادتمندی داشته باشیم دسته دوم چه گفتند گفتن خیر اگر دین خدایی است اگر پیامبر از طرف خدا مأمور شده لازمه دین کامل این است که همه نیازمندی ها را پیش بینی کرده باشه و راه جوابش رو را هم برای ما معین کرده باشه اگر این دو نظر رو که ما در نظر بگیریم نظر اول درست باشه پس تا زمانی که هدف انبیا تحقق نیافته مشکل در چیست؟ آنانی که برابود بیان یه چیزایی رو به وحی اضافه کنن و به کمک وحی برخیزن پس معلوم خوب انجام وظیفه نکردند، به کمک وحی نیامدن وحی کمبود دارد، نیاز دارد اونهایی که قرار بود این کمبود رو برطرف کنن و این نیاز را از میان ببرن همت نکردند پس مردم رو وادار کنیم به ویژه متفکرین اندیشمندان صاحب نظران بیان ببینن چه چیزایی وحکم داره بهش اضافه کنن تا مشکل حل بشه. اما اگر نظر دسته دوم رو قبول کردیم که میگه دین خدا نقص ندارد وحی کمبود نداره مشکل در چیست؟ اول از خود دین سراغ بگیریم که لازمه تحقق هدف انبیا از نظر خود دین چیست؟ و ما با عنوان پیروان مکتب وحی در رابطه با اون که خود وحی و دین بیان کرده چه مأموریت و مسئولیتی داریم اینو مشخص کنیم خب گفتیم دو تا عامل برای بررسی صحت یا سغم این دو نظریه میتونه وارد میدان بشه یکی در دنیای درون ما که خداوند به همه ما انایت کرده و یک سرمایه عظیم وجودی است که خود خدا هم در کتابش قرآن کریم و در مکتب وحی تأکید فراوانی نموده که از این سرمایه وجودی بهره بجویید و استفاده کنید عقل دوم خود وحی و شرع یعنی ما اگر بخوایم ببینیم این دو نظری که الان مطرحه آیا اولی درسته یا دومی یک با عقلمون بررسی میکنیم عقل چی میگه؟ دوم از خود شرع کمک می‌جوییم از خود وحی کمک میجوییم. ببینیم خود وحی در این رابطه چی گفته که تعبیری که به کار بردیم به وسیله عقل وقتی بررسی میکنیم اسمی میذاریم بررسی برون دینی به وسیله خود وحی و شرع وقتی بررسی میکنیم اسمی می‌ذاریم درون دینی ما دلائل فراوان عقلی ارائه کردیم در جلسات گذشته امروز دیگه خیلی وارد اونها نمیشم چون به اختزای محدودیت وقتی که تا چند جلسه داریم بحثو باید جمع کنیم به جایی ببریم که بتونیم انشالله نتیجه بگیریم ولی من به عزیزانی که کتبن با ایمیل یا شفایی یا تلفنی سوال میکردن عرض کردم بنده این کار رو به صورت یک کار تهدیدی تالیفی در دست دارم انشالله به شکل کتاب درآمد اونجا مفصل همه جوانب رو با مدارک ارائه خواهم کرد اما اینجا در حدی که زمان اجازه میده دارم بحث می‌کنم ببینید ما دلائل بسیاری آوردیم که عقل میگوید اول عقل. عقل میگوید اگر بشر به وحی نیاز دارد و خدای جهان که مطلق کمال است راه رفع نیاز این انسان را از طریق وحی و نبوت قرار داده باید فکر همه جوانب رو کرده باشه. اینو عقل میگه. با اون دلائلی که ارائه کردیم یک تعبیری رو در عرف اخلاقی به کار میبرن به همین موضوع عقلی هم رفت پیدا میکنه میگن الکرامو بل اتمام اگر قرار لطف کنید اگر قرار کرم کنید اگر قرار از شما یک خیری به دیگران برسه در چه صورتی به اتمام نمیرسه الکرامو بل اتمام نمیشه یک دهنده معتی کرم کننده توان نداشته باشه نقص داشته باشه میگه آقا دلم میخواست بهتر از این به شما لطف کنم اما دیگه چه کنم که توانم بیش از این نیست و از ما بیش از این مقدار بر نمیاد خب این که راجب خدا مطرح نیست چون مطلق کماله دوم توان دارد قدرت داره میتونه رو به اتمام برسونه ولی حسودیش میشه بخل میورزه. نمیخواد خیرش زیاد به دیگران برسه نوعی نقص اخلاقی و رفتاری اینم که راجب خدا مطرح نیست آیا ذات اقدس الهی برای این که انایت کند لطف کند افاظه کند بخل در او راه پیدا میکنه اینم که جزء صفات رزیله است صفات رزیلم که از صفات سلویه پروردگاره پس این رو هم عقل نمیپذیره مشکل دیگر ممکنه بگیم این دهنده که میخواد لطف کنه و اکرام کنه مشکل کمبود و نقص نداره مشکل بخلم نداره اما نمیفهمه حد نهایی چقدره میتونست بیستا لطف کنه ولی خیال کرد بر مبنای عدم علم دقیق اگر ده تا لطف کنه کافیه بعدها متوجه شدن نه عجب اگر این ده تا رو بیستا می کرد بهتر بود اما نفهمید جاهل این مسئله بود اینم که راجب ذات اقدس الهی قابل پذیرش نیست چون جهل در او راه نداره نقص در او راه نداره عجز در او راه نداره وقتی یک است. با عنوان مرسل شما اسمی که برای خدا به کار میبرید برای کسانی که وحی و قبول کردن خدا را قبول کردن داریم این بحث رو مطرح میکنیم شما میگید یا خالق خب لازمه یا خالق چیه؟ آفریننده باشه میگید یا مرسل لازمه یا مرسل چیه؟ رسول بفرسته یا منزل کتاب نازل کنه خب اگر خدا مرسل رسول است اگر خدا منزل کتاب است، فاعل حکیم است، فاعل کمال مهز است، از فاعل حکیم کمال مهز، فعلی که لازمش کماله، کمال نداشته باشه، به کمال مطلقه کمال لطمه بارد میشه پس خدایی خدا زیر سوال میره اینو عقل نمیپذیره بر همین مبنا عقل میگه چون بشر در مسیر تکامل به قانون دستور دستورالعمل باید و نباید نیاز دارد اونم نه در یک برههای از زمان نه در یک شعنی از شؤون در همه دوران زندگی انسان چه کودکی، چه نوجوانی و جوانی و چه پیری و کهنسالی، چه در مرحله زندگی فردی به عنوان یک فرد، چه در مرحله زندگی خانوادگی به عنوان خانواده، چه در مرحله اجتماعی که حساستر میشه که این را انشاءالله اشاره خواهم کرد، ما به باید و نباید اجتماعی نیاز داریم به باید و نباید خانوادگی احتیاج داریم به باید و نباید زندگی فردی هم احتیاج داریم اگر خدا مرسل است و رسول و وحی میفرستد در وحی پیشبینی این باید و نباید ها نشده باشد پس خدا فعلش ناقصه و لذا میبینیم آنانی هم که تو بحث حقوق و تکلیف صاحب نظر بودن، قلم زدن، چه شرقی، چه غربی، چه در بینش فلسفی به عنوان فلاسفه، چه در بینش عرفانی به عنوان عرفا، چه در بینش جامعه شناسی به عنوان جامعه شناسان، چه در بینش کلامی به عنوان متکلمین، چه در بینش حقوقی به عنوان صاحب نظران حقوق و قراردادهای اجتماعی، من دو نمونه رو عرض میکنم. در کتاب فلسفه حقوق از میشل دورب ترجمه مرتزا کلانتریان صفحه نه حقوق بر همه های زندگی ما حاکم است همین که کودک به دنیا می آید باید تولد او باید باید تولد او اعلام شود نامی بر او گذاشته شود باید بر طبق پاره از قاعده ها باشد قاعده های دیگری مقرر میدارد که باید نام او در مدرسه ای نوشته شود. وقتی کوچکترین چیزی می خریم یا سوار اتوبوسی میشویم در اجرای قراردادی این کار صورت می گیرد بر طبق حقوق ازدواج می کنیم کار می کنیم به درمان بیماری خود می پردازیم ما از این حضور همیشگی حقوق آگاهیم. و جوانیم آن را به کار ببریم سخن درستی در یعنی تمام زندگی ما حق و حقوق و تکلیف توش مطرحه رونالد دورکن که یکی از صاحب نظران تو این رشته است میگه ما در عالم حقوق و به وسیله آن زندگی میکنیم حقوق سازنده آن چیزهایی است که ما هستیم ما رعایه امپراتوری حقوق هستیم و تحت سلطه روشها و آرمانهای آن به سر میبریم و وقتی راجع به اینکه چه باید بکنیم بحث میکنیم روح و زمیرمان توسط حقوق به بند کشیده میشود یعنی چی؟ یعنی شما نمیتونید شعنی از شعون زندگی انسان را در نظر بگیرید که حق و حقوقی برای اون شأن مطرح نباشه خب حالا کسی که قراره برای این انسان تعیین تکلیف کنه خب یه شأنو ببینه شأنو دیگر رو نبینه شما در رابطه با جسم بنده دقت کنید منو به پزشک مراجعه بدید الان در رابطه با چشم من بگه باید این کارو کرد باید بر مبنای تخصص پزشکی اما ارتباط این باید با اون چی که در رابطه بعده من باید و نباید اگر لحاظ نشه با اون چه که در رابطه با سلسله اعصاب و عصبی من باید و نباید اگر رعایت نشه ممکنه یه بایدی اینجا بگه بقیه رو به هم بریزه لذا کسی می تواند این باید و نباید حقوقی و رابطه حقوق و تکلیف را برای این انسان در زندگی فردی خانوادگی اجتماعی معین کند که احاته کل بر همه شعون عالم داشته باشد نه فقط من فرد همونطوری که شما اگر میخواید حقوق زن و شوهر رو معین کنید باید هم زن رو بشناسید، هم شوهر رو، هم خانواده رو بشناسید، هم اختزای فردی زن رو بشناسید، اختزای فردی شوهر رو بشناسید، بعد اختزای این دوتا رو در کنار هم بشناسید. اگه اینو در نظر نگیرید، شما بخواید برای حقوق زن و مرد قانون باز کنید، قانون تو مثالی رو مرحوم خاجه نسید و دین توسی در کتاب، اخلاق ناصری در رابطه با کمال انسانی ذکر میکنه انصافن زیباز. میگه کمال یک موجود مرکب غیر از کمال اجزا و بساعت وی بود. مثال میزنه ساده میکنم. میگه شما یه لیوان سکنجبین رو در نظر بگیرید. مرکب از چیه؟ سرکه. آب انگبین ماده شیرین کننده. شما یه وقت اجزا را کامل دارید سرکه کامل طبیعی اینجا یه ظرف دارم انگبین طبیعی کامل مثل اصل طبیعی اینجا یه ظرف دارم آب تصویه شده گبارای بسیار سالم یه ظرف اینجا دارم این کافیش که سکنجبین من کامل باشد یا هنر اون کسی که قرار اینها را با هم قاطی کنه چه نسبتی قاطی کنه سکنجبین چقدر باشه آب به چه میزان باشه؟ الان این سرکهی ای که قراره تو این مایه بریزم چه نسبتی باشه؟ یک کمی بالا پایین شد این سکنجبینه حاصلش میشه یه چیز خراب غیر قابل خوردن. در دنیای وجود انسان رابطه جسم با روح، رابطه جسم و روح در عالم ملک با ملکوت، رابطه یک موجود ملکوتی در عالم ملک با ملک رابطه یک موجود ملکوتی در عالم ملک با عالم ملکوت و هدف از سیر از ملک به ملکوت اینو تا کسی که همه اینا رو ندونه چجوری میخواد قانون بز کنه لذا عقل میاد میگه این کار خداست بر این مبناست که ما در قرآن کریم داریم این الحکم الله لله حکم نیست مگر برای خدا و لذا اگر پیامبر را حاکم شهر میدانیم اگر امام معصوم را حاکم شهر میدانیم چون در ارتباط با خداست و از طرف خدا حکم الهی را برای ما بیان می کند همین حرف عقلی را حالا در درون دین هم دو تا آیه رو جلسه قبل اشاره کردم وقت اجازه نداد توضیح کافی بدم و یه آیه بهش اضافه می کنم که تقاضا دارم دقت کنید خیلی دقیقه بعد تفسیر امیرالمومنین المؤمنین رو راجب این آیه بگم تفسیر امام باقی رو راجب این آیه بگم تفسیر امام صادق رو راجب این آیه بگم از نظر اقلی ما هرچه با نگرش فلسفه و عرفان و کلام و جامعه شناسی و حقوق وارد میشیم میبینیم نمیشه برای باید و نباید انسانی کسی که احاطه بر کل ندارد حق اظهار نظر داشته باشه همونطوری که در رابطه با بدن من آقا الان چشم منو میخوان عمل کنند این پزشک چهار تا پزشک که دیگرم دعوت میکنه میگه تویی که متخصص قلبی تو هم نظر بده تویی که متخصص مثلا جهاز ای تو هم نظر بده تویی که متخصص مثلا شرایط سلسله عذبی و مغزی تو هم نظر بده آیا با همدیگه ما الان میتونیم این پارو صورت بدیم یا نه برای یک انسانی که ملکوتی در ملکه این اثبات میکنن و قرار از ملک به ملکوت شیر کنه و اون کسی که این روابط رو در همه شون ندونه چجوری میخواد اظهار نظر کلی بکنه بعد بگیم دین اقلیه اکثریشو ماها بیاییم بهش اضافه کنیم ما چیو میخوایم اضافه کنیم به حکم خدا که خدا نفهمیدم من فهمیدم پیغمبر نفهمیده من فهمیدم یا خدا فهمیده بخور ورزیده نگفته او وقت من این توانو دارم بگم حالا انایت بکنید ای که جلسه قبل براتون خوندم یک سوره مبارکه انعام آیه مبارکه سی و و ما من دابتن فلعرض ولا تائرنیتی رو به جناحیه الا اوممون امثال کم هیچ ای در زمین هیچ پرنده ای در آسمان نیست کنایه از این که هیچ مخلوقی از مخلوقات خدا نیست مگر اینکه اونام عمتا همون گونه که شماها امتید. فرق امت با ملت رو جلسه قبل توضیح دادم سوالی پرسیدن عرض کردم امت به جمعیتی میگن هدف واحد مسیر واحد پیشوای واحد تبعیت واحد به سوی هدف واحد یه نواخت حرکت میکنن اینا رو میگن امت ملت به جمعی میگن که طبق یک قراردادی دور هم جمع شدن ولی ممکنه افکارشون یکی نباشه سوال کردن در قرآن کریم ملت ابراهیم ذکر شده و ملت در قرآن به معنی دینم اومده درست این حرف اما دقت بفرمایید هیچ منافاتی با اون بحث هم نداره چرا راجب من و شما میگن ما ملت ابراهیمیم، امت ابراهیم نیستیم؟ ملت به معنی دینم میاد با همون واژه مستحدزه ملت هماهنگی داره به این معنی. الان اگر شما بگید که مثلا من دین ابراهیم دارم. مسیحی ها میگن ما دینمون دین ابراهیمه، یهودی میگن ما دینمون دین ابراهیمه، ولی ما مسلمونا و یهودی و مسیحی یه امت نیستیم. با هم اختلاف هم داریم. اونجایی که این اختلافات مطرح نیست یکی میشن میشن امت لازمه امت هم چیه؟ لازمه امت هم اینه که امام داشته باشه امت بی امام معنا پیدا نمیکنه و امام است که امت را به یک سوی به حرکت در میاره لذا میگه همونطوری که اگر شما قرار امت باشید باید امام داشته باشید اگر الان همین جمعی که ما تو این حسینیه نشستیم پنج نفرمون تابع نظر یکی باشیم، ده نفرمون تابع نظر یکی دیگر، پنجا نفرمون تابع نظر یکی دیگر، بعد به اقتضای اون فردی که ما تابع نظر او هستیم، او الگوی ماست، ما پیروان او هستیم، دست دسته میشیم یا نه؟ در چه صورتی هممون یه دسته هستیم؟ یک نفر را به عنوان شاخص و الگو پذیرفتیم، هممون دنبال رو او باشیم، این حالت میشه امت، و لذا در اسلام هم تلاش بر اینه که پیروان پیغمبر اسلام امت بشن تو پرانتز میگم بحث الان من نیست ولی انشالله بهش میرسم این که پیغمبر خدا فرمودن نه یه نه ده روایت نه صد روایت نه, نه در شیعه تنها هم سنی هم شیعه همه با هم نقل کردن پیغمبر فرمود اگر میخواهید بعد از من پراکنده نشید شما جامعه با پیدا کنید امت بشید دست به دامن اهل بیت من بزنید دلیلش همینه و این که حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبه فدکیه فرمودند طاعتنا نظام للمله و امامتنا امان من الفرغه. اگر میخواید شما یک جامعه داشت باشید که نظام داشته باشید نظام چیه هر چیزی سر جای خودش قرار بگیره وظیفه خودشو انجام بده اگر میخواید شما یک جامعه با نظام داشته باشید تاعتنا باید از ما تبعیت کنید و امامتنا امانن ملر فرقه. اگه میخواید از تفرق و دست بندی جدا بشید باید امامت ما خانواده رو بپذیرید حالا خدا وقتی در قرآن میگه من برای هر جنبندهی مثل شما اممت قرار دادم یعنی اون عاملی که ما را به یک سو بکشاند تفرق ایجاد نکنه در بقیه به چه صورت قرار داده جبری تکوینی هدایت درونی لذا اون مرغ بر مبنای خلقت الهی دنبال رو به اون سردستش میشه اون گله گوسفند طبق اون نظام هدایت تکوینی این سیرشو طی میکنه اون مجموعه زنبور و اصل و موریانه و مورچگان طبق اون نظام الهی این سیر رو طی میکنه جلو میره اما ما انسان ها چون اختیار داریم از طرف پروردگار عامل امت شدن قرار گرفته که دو چیزه عنایت کنی چی ازم کنم؟ عامل امت شدن از طرف پروردگار برای ما چه هدف انبیا تحقق میابد اون وقتی که جامعه امت شود برای امت شدن دو چیز لازم است از طرف خالق عالم یک چیز لازم است از طرف مخلوق که ما انسانها باشیم برای امت انسانی شدن اون دو چیز از طرف خدا قانون کامل مجری کامل قانون کامل مجری کامل و لذا پیغمبر فرمودند انی تارکن فیت کوم استقلین او سقلین کتاب الله و اثرتی اگه کتاب تنها باشه همه چیزم داشته باشه نمیتونه بشر و امت کنه امام باید در کنار کتاب باشه امام و کتاب سومی کیه تظیرش مردم آمادگی مردم حالا آیه رو دقت کنید میگه وما من بطن فلعرز و ولا تائرن یتیرو به جناحی نه یک جنبنده در این عالم عالم خاکی زمینی نه یک جنبنده و پرنده در بالا سر شما کنایه از کل مخلوقات الا اوممون امثال کن اونا مثل شما ها امت میتونن باشن و امتن خب حالا بلا فاصله میاد چیو میگه ما فرتنا دقت کنید قرآنو آقا قرآنو باید بخونیم سباب داره عالی قرآنو ببوسیم بالا سرمون بذاریم سباب داره عالی سر صفره عقق قرآن بذاریم دست شما درد نکنه خونه تازه میخرم توش برم قرآن ببریم دست شما درد نکنه ولی همین هم مقدم است. مهمتر از همه چیه قرآنو بفهمیم تا عمل کنیم اگرم بفهمیم عمل نکنیم که میفرماید لما تقولونه مالا تفعلون بذارید این درد دل رو بکنم ما این دو ماه محرم و سفر به برکت ابی عبدالله حسین علیه السلام چقدر مجلس در این ایران برپا شده و می شود الحمدلله ولی چقدر در فهم دین عمقی در شدن دین معرفت دینی رو بالا ببریم و زمینه عمل با معرفت رو در خودمون ایجاد کنیم تلاش میکنیم به حدی که یه بندی خدایی به من میگفت یا آقایی گفت آقا شما جلسه دینی دارید؟ گفتم بله گفت اینقدر پول من میدم اونجا شل زرد به و بقیه بدید گفت ما اونجا شرایط شل زرد پختن نداریم ولی میتونیم کتاب بخریم بدیم او نه نه نه کتاب نه شل زرد ببینید من نمیگم شل زرد ندید. دستون درد نکنه. ولی شلزر جای کتاب رو میگیره؟ چرا رو به کتاب خوندن نمیکنیم؟ چرا جلسات دینی ما تو مردم این انگیزه رو ایجاد نمیکنه که من شب آشورا اینجا التماس کردم و خیلی هم بعد از اون با من تماس گرفتن و لیست مطالعاتی گرفتن گفتم شما رو به جان عبی عبدالله تا آشورای بعدی به خاطر امام حسین دوازدر تا کتاب بخون ماهی کتاب و خیلی شروع کردن ممنونم اونهایی که با من در تماسن من میدونم میگم بقیه را خبر ندارم خب حالا اینجا دقت کنی چی داره میگه قرآن میگه جنبنده روی زمین پرنده آسمان امته امتم امام داره امام هم باید امت چنان گرایش به او داشته باشه که در راستای باید و نباید امام حرکت کنه خب خیلی خوب این میشه تکوینی ربن الذی اعطى کل شیئن خلقه ثم هدا اما حالا در رابطه با اینجا چی میگه ما فرتنا فل کتاب من شیء هیچ چیزی رو در کتاب فرو گذار نکردیم چه ربطی داره رابطه دقت کنید نگفت اونام امتان مثل شما پس شما قرار امت باشید اول چیزی که لازمه امت بودن شماست اینکه که کتابی که قراره شما پیرو با اون کتاب باشید در اون کتاب ما فررت نامن شید. هیچی فروگذار نشده باشه یعنی اگر کتابی که قراره شماها را در دوره برای این کتاب جمع کنه بعد میرسیم که میگه کتاب تنهام نمیتونه. ولی اول کتاب میخواد. کتاب مجموعه قوانینه. دستور العمله. اون چه نتیجه قوه مغننه است در به مغنن خداست قانونش در کتابی به صورت قرآن برای امت شدن ما به ما ارائه شده ما در محذرش میگه ما من شی دوستانی که با عربی آشنان این سیاق بیان یعنی افاده عموم یعنی بلا استثناء هیچی نیست که اون را نگفته باشد فروگذار نکرده باشد تاییدش دقت کنی تعییدش رو آیه بعدی که خوندم حالا تفسیر امام و براتون عرض میکنم در سوره مبارکه نحل آیه شماره 89 فرمود و نزلنا علیکل کتابه خب علیکه کاف پیغمبر اسلام دیگه این کتاب هم آخرینه یعنی قرآن کریم این کتاب رو بر تو نازل کردیم تبیانن لکل شعیه تبیانن لکل شعیه آقا قرینه داره که بعضی چیزا بله بعضی چیزا نه که شما بگی حد اقلی آقا در فهم یک کتاب یک زبان اگر یک عبارتی قرینه قیدی نداشت مقیدش نکردن محدودش نکردن داله بر مطلق و اطلاق هست یا نیست خب این که حتی نه تنها قرینه بر مقید ندارد تصریح بر اطلاقه غرینه بر اطلاقه میگه تبیانن لکل شی همه چیز رو بیان کرده حالا اینجا یک نکته قرآنیه عجیبی است که از جای دیگه قرآن با سوژه ای که از المیزان یاد گرفتم عرض میکنم اصل سوژه مال اونجاست خدایش بر اولو درجات مرحوم علامه طباطبایی بیفزاید که این ریزکاری ها رو در قرآن ببینید چه دقتی ایشون کردن خب اینجا اول قبل از اینکه من وارد اون آیه بشم سوجی بگیرم طرفداران مکتب اقلی بودن دین به این آیات میرسن چی میگن اینن نوشته رو بنده خوندم مصاحبه ها رو گوش کردم تو سایت ها نظرات رو دیدم میگن بله قرآن گفته تی بیان ما قران رو قبول داریم اما لکلشی در رابطه با حد نه ال در رابطه با هر چیز خب از کجا آوردید این حرف رو؟ کجای قرآن اینو میگه؟ قیدی داره؟ اونا یه آوردن من شاهدشون بگم میگن مثلا آقا تو قرآن راجب عمل جراحی کلیه چیزی گفته؟ پس طبیانا لکل شی نیستی که اگه لکل شی باشه بد راجب عمل جراحی کلیه هم مطلبی داشته باشه کجای قرآنه؟ یا اگر طبیل کل شی یعنی هر چیزی بخوای نیاز داشته باشی قرآن قرار پیشبینی پیش کرده باشه خب شما در کجای قرآن به فیزیک دارید رجیب شیمی دارید رجیبه مشکلات گوناگون مثلا حل ترافیک تهران دارید اینا که تو قرآن نیست که پس معلوم طبیل کلشی یعنی این شی میشه مسائل هدایتی که اخلاقیات و آدمای خوبی باشیم و به همدی دروغ نگیم و مردم ما وز... اینا رو برای ما بیان کرده غیر از این نیست. من ابتدا اجازه بدید قبل از اینکه شخصا اظهار نظر بکنم و اون فرمایش علامه تبا تبایی رو که از آیه دیگه آورده و بسیار حرف زیبایی است شاهد بیارم شما هم قضاوت کنید اجازه بدید اول نظر امیرالمؤمنین به عنوان کسی که با پیغمبر بوده شاهد نزول قرآن بوده و پیغمبر راجبه امیرالمؤمنین به ما چی فرمودند خود امیرالمومنین تو نهج البلاغه برای ما توضیح میدن که پیغمبر به من فرمودن علیجان برای اینکه علی رو به ما معرفی کنن انک تسمع أَسْمَ ما اسمه و ترا ما ارا و لکن لست هر چی من میشنویم تو میشنوی هر چی من میبینم تو میبینی ولی تو دیگه پیغمبر نیستی چون قرار نیست بعد از پیغمبر پیغمبر بیاد آیا امیرالمومنین این مقدار قران رو فهمیدن یا نه ایشون چی فرمودن نهج البلاغه خطبه شماره 18 دقت بفرمایید فی ذم اختلاف علما سلفطیا و زم اهل رائے کسانی که در فتوا اختلاف درست میکنن این یه چیزی میگه اون یه چیزی میگه کسانی که به نظر شخصی خودشون اکتفا میکنند، یعنی تفسیر به رأی میکنن ملاکات در نظر نمیگیرن خیلی خطبه طولانی نیست دو تا پاراگرافه پاراگراف اولم جالب ولی من چون وقت ندارم زمان من اجازه نمیده من پاراگراف اولو نمیخونم ولی از شما عزیزان خواهش میکنم منزل تشبردید نهج البلاغه رو بردارید خطبه شماره 18 این پاراگراف اولشام بخونید من پاراگراف دوم رو برای شما میخونم امیرالمومنین علیه السلام به عنوان اعتراض که یکی میگه من اینجوری میفهمم اون میگه من اینجوری میفهمم میفرماد ام انزل الله سبحانه دین ناقصا به بهم الا اتمامه آیا شما خیال کردید که خداوند دینشو ناقص نازل کرده از شما کمک خواسته که تکمیلش کنید درست حرفی که امروزه تو جوامع بشری ما پیروان مکتب بغ متراه 1400 سال امیرالمومنین نمونه رو دیدن دارن سرزنش میکنند. ام انزل الله سبحانه او دینن ناقصا ف بهم به هم شما خیال کردید خدا دینی ناقص فرستاده و کمک اله که بیاید کاملش کنید، ام کانو شرکا اللهو فلهم ای یقولو و علیه ای یا شماها شریک خدا شدید؟ که شما میگید بعد اینجوری میگیم خدام بگه باشه قاب دو شریکیم دیگه هم بالاخره شریک پارم باید ملاحظه کرد حالا مثلا فرض کنید ما الان یه تجارت خونه داریم دو نفریم بنده میگم تا اینجا فکرم رسید شریک من میاد میگه آقا این پارم بکنیم بهتر ها میگم راست میگی آره چاش میتارم میکنم میگه شما خیال کردید شریک خدایید که یه چیزی بگید خدام بگه آره من راضی شدم این حرفو انجام بدید یعنی خودتونو در این حد میبینید اما انزل الله سبحانه دینن تاممن فقط سر رسول ان تبلیغه و ادائه یا نه این دو تا نیست خدا دینش شد کامل فرو فرستاده ولی پیغمبرش کوتاهی کرده کامل برای شما بیان کنه در اختیار شما بذاره اینو میخواید بگید والله سبحانه یقول ما فرطنا فالکتاب من شی این آیهی ای کلام با هم میخونیم به خدا قسم خدا تو قرآن اینو گفته و فیه تبیانن لكل شيء الان آیه‌ای که باز دوباره خوندم آیه‌ی بعدی تو سوره نعل مگه خدا تو قرآن نگفته تبیان کل شیء و ذکر و توضیح داده ان الكتاب یصدق بعضه بعضا و انه لا اختلاففی خدا میگه قرآن و این آیات با آیات دیگه هم دیگه رو توضیح میدن اینا رو کناره هم بذارید تا بتونید بفهمید منظور الهی چیه و چی میخواد بگه یعنی مشکل در کمبود کتاب نیست مشکل در فهم شما از کتاب خداست. که برای فهم خدا هم فهم کتاب خدا هم یکی خود کتاب خداست یکی امامی که خدا قرار میده حالا چه جوری ان خواهم کرد و انه لا اختلاف فیه وقال و قال سبحانه ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فيه اختلافا کثیرا قرآن که اختلاف نداره تناقض نداره خود خدا تو قرآن گفته اگه قرار بود این کتاب آسمانی نباشه در او اختلاف زیاد میدیدید و وقت اشاره ای رو فرمودن و آ ظاهره ظاهر عنیق و, و باتن او عمیق لا تفنا جاابب ولا تنقضی قرارائب او ولا تكشف الظلمات الا به اللابه قرآ ظاهری داره یه باطنی داره ظاهرش یه باطنش باتنش جوره ععم در عق داره بثنا در بس بث داره اجابب قرآن به این زودی ها که این عجاابب که منغضی نمیشه زمت ها و تیرگیها ها از میان نمی مگر به وسیله قرآ خب این یک تفسیر از امیرالمومنین تو نهج البلاغه راجبه چی؟ راجبه همین آیه ما فررت نافل کتاب منشی اورانم تبیان کلشی امیر المؤمنین چی فرمون؟ فرمون خدا کم داشت تو دینش که شما میخواید کمکش بکنید پس از دید امیر دین کم بود نداره حالا این نحوه فهم برای حده اکثری چجوریه ارز میکنم اجازه بدید از زبان امام باغر و امام صادق علی من روایتی براتون بخونم یک. تفسیر نور و سعیلین جلد سه صفحه 8 و از امام صادق عليه السلام. اینالله تبارکه و, اِن تبارک و تعالا انزل فی القرآن تبیان کل شیع. حتی و الله خداوند در قرآن این آیه تبیان کل شیع رو نازل کرده حتی و تا اینکه به خدا قسم ما ترک شیعن. تحتاج اليه العباد حتی لا یستتی عبد يقول لو كان هذا انزل في القرآن الا وقد انزله الله از این سریتر ترجمه عبارت چی شد به خدا قسم ما ترک شیئا هیچ چیزی رو خدا فروگذار نکرده تحتاج الیه العباد که این بندگان به او محتاجن حتی تا اینکه لا يستطيع عبد هیچ عبدی نتونه بگه یقول لو کان هازا انزل اگر این تو قران نازل میشد خوب بوده الا فقط انزله هالله الی مگر اینکه همینم خدا نازل کرده حالا اون اشکار جواب میدما اون مرحوم علامه فرمودن یعنی چی خب کجای آن گفته کلیه رو اینجوری جراحی کنید پس تبیان کلشه منظور چیه حالا عرض میکنم اول عرض کردم این فرمایش امیرالمومنین خطبه 18 نهج این هم یه روایت از امام صادق السلام دریاوی از این روایات اجازه بدید من یه روایتی دیگه باز از امام باغر علیه السلام هم براتون بخونم امام باغر علیه السلام فرمودن کافی جلد دو صفحه افتاد حدیث شماره دو بهار مرحوم علامه مجلسی جلد 67 صفحه 96 و, و شیعه شیخ هر جلد دوازده صفحه بیست و این منابع دم دستلی. امام باغر فرمودن که جد ما رسول خدا در حجت الودا فرمود در خطبه قدیر خم وقتی دیگه خواست بگه من دارم میرم تمام شد علی رو میخوام معرفی کنم قرار بیاد سر جای من بشینه حالا امت باید پیرو به این امام باشن که ادامه بدن یا ایوهن ناس امام باغر میفرماید این فرمایش جد ما قدیر و خم بود یا ایوهن ناس والله ما من شیعن یغربکم من الجنه و یباعدکم من النار الا وقد امرتکم به،, به خدا قسم هیچی نیست که شما را به بهشت برساند و شما را از جهنم بیرون بیاورد مگر این که من شما را بهش عمر کردم و ما من شیعن یغربکم من النار و یباعدکم من الجنه الا وقد نهیتکم و هیچ چیزی نیست که شما را از بهشت بیرون برانه و شما را به جهنم نزدیک کنه مگر اینکه نحی کردم یعنی باید و نباید رو کامل به شما گفتم حالا بعد عرض میکنم اونا اومدن گفتن که ما میگیم حد اقلی حرفا رو قبول داریم اینا راجب بهشت و جهنم یعنی راجب آخرته راجب دنیا نیست حالا بحث میکنیم که اصلا این در رابطه باید و نباید دنیایی است که نتیجه نحوه عمل به باید و نباید نتیجهش در اونجا معلوم میشه این بازی با لفظه شما اگر باید و نباید رو در دنیا رعایت نکردید اینا بحث میکنم اما من چشم به ساعت وقت ندارم وگرنه این بحث باید جلسات دو ساعته باشه آدم بتونه به جایی برسونه انایت بکنی اگر یک انسانی دیوانه است مکلف نیست چون مکلف نیست باید و نباید برای او معنا نداره انسانی که عاقل است و بالغ است مکلف است چون است باید و نباید دارد باید و نبایدی که تکلیف را مشخص می کند مال دار تکلیفه دار تکلیف دنیاست بعد از مر دیگه تکلیف معنا نداره پس اون چه که باعث میشه شما به بهشت برید یعنی شما تو نظام اجتماعی قرار با مردم چجوری روابط اجتماعی داشته باشید تو زندگی خانوادگی قرار چجوری روابط زندگی خانوادگی داشته باشید تو زندگی فردی هم قرار چجوری زندگی فردی داشته باشید حالا سریع ترش باز از امام صادق علیه السلام بسائر و درجات صفحه 413 الاختصاص مرحوم شیخ مفید صفحه 313 بهار جلد 22 صفحه 552 اما الحلال و الحرام چی باید؟ چی نباید؟ حلال و حرام به معنی باید و نباید دیگه دستور العمل چی باید؟ چی نباید؟ فقط والله انزل الله على نبیهی به کماله خدا همه رو به نبیش کامل نازل کرده و روایت دیگری از امام صادق علیه السلام در بسا ارود صفحه 162 و 163 جلد 26 بهار صفحه 22 إن اندنا للصحيفه طولها سبعون ذراعا كنايه است من یادمه اون زمانی که سی دی هنوز در نیومده بود یکی از همین تیپ ها که تو ایرانم بود کتابی نوشته بود بندم ام جوابشو نوشتم چاپ شده ایشون در کتاب نوشته بود هی به ما میگن که مصحف حضرت زهرا لوه جابر آخه مگه چقدر جا داشته همه چی توش بیاد گفتم این سیدی هم وقتی در اومد گفتم آقا سه هزار کتاب رو توی لوه سیدی شما این کار بشره حالا کار خدا اینه چه قیاسی میاد بر مبنای تصور فردی خودش خیال میکنی تو این معدود است حالا انشاءالله اگر عمری بود جلسه بعد تحلیل ابن سینا رو میگم که میگه نبی کیه میگه نبی اشاره میکنم بعد تعبیرش جلسه بعد براتون میگم ابن سینا میگه میدونی کی میتونه نبی بشه درجه ملکوتیش در عالم ملک اونچنان بر ملک قلبه داره تمام عیار ملکوت در ملک وقتی ملکوت در ملک جلوه و در ملک به بقیه نشون میده خیلی حرف عمیق و قشنگه ولی باید مقدمات و با استدلال شدید لذا اصلا پنهانی همه حقایق عالم ملکوت براش میشه علم حضوری وقتی علم حضوری شد دیگه نقص معنا نداره مونتا اگر همرمگاهی بروز نمیدن از باب کلم الناس الا قدر عقولهمه حالا می‌رسیم ان شاء ما اینجا امام صادق علیه السلام فرمودن ان اندنا ل صحیف یه صحیفه ای پیش ماست طولها 70 ذراعه 70 متر طولشه نه واقعا یه لوح هفتاد متر برای توضیح ما حالا به قول من مثلا یه سی دی ما داریم تو این سی دی املاع و رسول الله و خط و علی به یده پیغمبر املا کرده علی نوشته ما من حلال ولا حرام الا و هوفیها هیچ باید و نبایدی نیست مگر که توش هست حتی عرش الخط حتی اگر یه اینجوری ضربهی به دست زدید حکمش چیه؟ اینم بیان کردن یعنی چی؟ یعنی هیچی پروگذار نشده باز امام باغر علیه السلام فرمودن بسائر رو درجات صفحه 168 حدیث نو، بهار جلد 26 صفحه 35. اِنَّ الْحُسَيْنَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا هَزَرَهُ الْلَزِي او وقتی روز آشورا شد امام حسین علیه السلام دیگه دید که لحظات آخر حیاتشونه دعا ابنته الکبره فاطمه فاطمه سکینه دختر بزرگشون رو خواست فدفعه الیها کتابا ملفوفا یک کتاب پیچیده شده ای رو نوشته پیچیده شده ای رو دادن به این دخترشون و وصیتا ظاهرا و وصیتا باطنه یه وصیتی که هم جنبه ظاهری داشت هم جنبه باطنی و کان علی ابن الحسین علیه السلام مبطونن لا يرون الا انه لما بهی فدفعت فاطمة الكتاب الی علی الحسین چون علی ابن الحسین توی شراائط خاصی بود قرار نبود به او بدن مگر اون موقعی که شون امانتو فعلا حفظ کنه بعد تعویلش تعویل داد فقال فیه والله جميعو ما یحتاجو الیه، ولد آدم الاتفند دنیا به خدا قسم اون چرا نسل آدم تا زمانی که قرار این دنیا از بین بره یعنی قیامت برپا بشه همش تو این نوشته ای که بابام امام حسین به من داد توش بود حالا اینا رو من بعد بحث میکنم اینا تفسیر امامان از این آیه حالا بنده بیام طبق نظر شخصی خودم بگم خب اگر اینجوری باشه پس اون چیه؟ پس اون چیه؟ من نمیگم شما حق فکر کردن ندارید اشتباه نشه. ولی حالا ببینید یک حکیم یک قرآن شناس ، یک عالم دین بررح اللامه تبا تبایی. اینو با یه جای دیگه قرآن ربط داده. میدونم الان چشمم به ساعت وقت اجازه نمیده ولی سوژه بحث امشب مطرح میکنم انشاءالله اگر زنده بودیم جلسه بعد این نکته قرآنی رو مثل دعای قبل که پایان جلسه قبل بود امشب بیشتر چکافتم هفته بعد انشاءالله اگر زنده بودم براتون بشکافم خوب دقت کنید سوره مبارکه زخرف از اون است که اونایی که علاقه به قرآن دارن و تو قرآن تعمق میکنن به این آیات ورسن اینجور آیا آدم رو به وجد میاره ببینید چی داره میگه بسم الله الرحمن الرحیم حامیم ولی کتاب المبین و واب قسمه قسم به این کتاب ال کتاب اومد یعنی قرآن مبین روشنگره بیان کننده است داره توضیح میده inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qulun ما این کتاب را عربی قرار دادیم باشد که شما بتونید تعقل کنید مرحوم علامه نکته‌ای دارن میگن پس معلومه قرآن یه حالتی دیگه‌ای هم داشته که این حالتی از قرآن که الان ما در خدمتش هستیم آقا الان یه مطلبی تو ذهن بنده است من میخوام این مطلب رو یه وقت برای شما عزیزان منعکس کنم با یه زبان فارسی چون شما شنونده فارسی زبانید به فارسی میگم یه توضیحاتی میدم یه مقدماتی میشینم، یه شواهدی میارم شما منظوری که تو ذهن شما بود فهمیدیم معلوم قرآن در یه جایی اصل قرآن به یک شکلی که الان قراره تو این عالم عقل به تواند از او استفاده کند قرار شده به زبان عربی با قواعد عربی باشه لعلکم تعقلون وقت شاهدش قسمت بعدی و انه به درستی که این کتاب فی ام کتاب لدینا در اون ام کتاب مادر کتابها لدینا پیش خود ما لعلی حکیم هم خیلی عالی است هم محکم و با حکمته یعنی چی یعنی باطن قرآن اونیست که پیش خداست ظاهر قرآن این لفظه ما ظاهر قرآن رو در رابطه با مسائل خودمون میفهمیم و بحث میکنیم لذا آقا اونی که فرمود لا رتبن ولا یابس الا فی کتاب مبین در اون جنبه لدینا لعلی حکیم کسانی باید باشند که علاوه بر فهم عقلی نسبت به قرآن به زبان عربی به اون لدینا احاطه پیدا کنن اون امام در کنار قرآنه و لذا قرآن میشه کتاب کامل و اسلام میشه دین کامل کدام اسلام اسلامی که امامش امامی که لدینا را در مییابد در کنار کتابی که در لوح محفوظ است احاطه پیدا کند ما امامو کنار گذاشتیم خانه نشینش کردیم بعد خودمون میایم. هی به این کتاب یه چیزی اضافه میکنیم بعد میگیم چرا پیاده نشود کدام وی وحی که امام تفسیر کنه وحی که امام چوزی بده تازه در اجرایشم که بحثها داره ما از مکتب امامان دور شدیم آقا درد نیست بعد از پیغمبر علی ابن عبی طالب در نخلستانهای مدینه بیل میزند کعب و مفسر قرآن میشود وقت اسلام پیاده شود؟ نتیجهش داعش میشه، نتیجهش آل سعود میشه، نتیجهش وهابیت میشه، نتیجهش این میشه که ما تو مجامع علمی دنیا بگن اسلام اینه عرق بریزیم. ولی نه سرمونی میگیریم بالا میگیم ما اون اسلامی را قبول داریم که امام حسین روز آشورا فریاد زد حلالی رو حرام کردم؟ حرامی رو حلال کرد چون وقت اجازه نمیده اجازه بدید شام شهادت امام سجاد عرض ادبی و محضر رو اون امام بکنم ادامه این بحث و این لدینا لعلی حکیم فی لوح محفوظ در جای دیگه و احاطه امام بر لوح محفوظ که همون هم میتونه در بیاره اینو اجازه بدید بذارم جلسه بعد ان آقا کارو به کجا رسندن طرف میگه وارد بازار شام شدم دیدم شهر عظیم بستن خدایا اید غربان نیست، اید فطر نیست، ایام سرور ما مسلمان نیست، چرا شهر عظیم بستن؟ اول ماه سفر بود، چرا شهر عظیم بستن؟ از یکی پرسیدم، گفت یه خارجی، خارجی یعنی از دین برگشته، خارج از دین اسلام یه عده خارجی علیه امیر المؤمنین یزید قیام کردن، مرداشون کشته شدن، زن و بچهشون اسیر شده اینا رو دارن وارد شهر می کنن. ما شهر عظیم بستیم گفتم خب منم واسدم ببینم چه خبره؟ من واسدادم. دیدم یه سرای بالای نیزه هست. حالا آشورات دهم محرم بوده. اول سفر 20 روز گذشته. سرای بالای نیزه هست جلو کاروان. کاروانم پشت سر این سرها دارن میان. اما همینجوری که نگاه به این سرای کردن این سرای نورانیت خاصی دارن. نمیخوره به این سرای این بدی باشد؟ این مقدار حس کنجکاوی منو بادار کرد برم جلو رفتم دیدم یه مردی با ایناست همه زن و بچه‌ن یه مرده ولی بر شطور برهنه سوارش کردن با زنجیر دو تا دست اینجوری بستن. و این زنجیر آوردن دور گردنش گردوندن آوردن زیر شکم دو تا پا هم صحنه رو در نظر بگیرید دست بسته گردن با زنجیر دو پا هم با زنجیر بسته من رفتم جلو گفتم آقا جان شما چه دعوای با اسلام داشتید؟ خب به شما نمیخوره با اسلام در بیافتید؟ فرمود پدر جان شما قرآن خونده ای؟ گفتم قرآن که کتاب ما مسلمان به شما چه ربطی داره؟ گفت سوال میکنم قرآن خونده ای؟ بله این آیه رو در قرآن دیدی؟ این نماهی ریدل لالیازه و آن سهل البیت و جتهر کم تجیرا این آیه که راجع به اهل بیت پیغمبره. فال سوال دیگه دارم شما در قرآن این آیه رو دیده‌ای قلا اسالکم علیها اجرا الا المبدته فی الغربا گفت این آیه که راجب مودت با این سر حسین پسر پیغمبره من علی ابن الحسینم پیرمرد فریاد زد آی مردم شام کلا سرتون گذاشتن اینا خاندان رسالت هن بعد میگه به امام عرض کردم آقا از من کاری برای شما ساخته است فرمود پولم را داری برای چی آقا یکم به این نیزه‌دارا بده این سرار رو ببرن جلو این مردم از بس به این سرا نگاه میکنن به ناموس ما نگاه میکنن اومدم یک کمی پول به این نیزدارا دادم خواهش کردم سر و بردن جلو برگشتم گفتم آقا این کار کردم سر رو بردن جلوتر، کار دیگه از من ساخته است یا نه امام میخواد پیام بده مسئله شخصی نیست فرمود میتونی یه تیکه از پارچه امامت رو پاره کنی به من بدی آقا برای چی؟ این زنجیر گردنم رو زخم کرده میخوام یه پارچه زیرش بذارم. میگه من گوشه امامم رو پاره کردم. دیدم امام که دستش بسته است. به زحمتی امام خودشو کشید پایین. من خودم رو کشوندم بالا. این زنجیر رو برداشتم که این پارچه رو بذارم. خون از گردن امام سرازیر شد. سی و چهار سال بعد از کربلا امام بود. بچه شش ماهه میدید گریه میکرد. جوان سیزده ساله میدید گریه میکرد. جوان هیچ ده ساله میدید گریه می کرد مخصوصا وقتی از جایی رد می شد غصابی می خواست بکشه یه <تصحن> <تصحن> نگاهی می کرد. حال از رد منقلب می شد می گو آی غصاب به گوسفند آب دادی یا نه می گو آقا آخه ما مسلمونیم نمیشه شه گوسبند و تشنه گشت میگه میدونید می, می بابا و کربلا تشنه سروریدن الله علیک یا مولای يا علي يا ابن الحسين يا ابن رسول الله يا حجه الله على خلقه یا سیدنا مولانا اینا توجهنا نا و و توسلنا بك الله و قدمنا که يدي حاجاتنا يا وجهنا لله اشفع لنا عند الله اللهم باسمك يا لظیم العظم العز لجلل به بمولانا صاحب الزمان يا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مغلب القلوب ثبت قلبی على دینك ذکفنا يا غازي النهج و يا كافي المهمات انك كم تجيب الدعوات انك على كل شيء قدير برحمت که یا رحم الراحمین یا غیاس المزدر المستقیسین یا دلیل المتعیرین یا قایت آمال نارفین یا جلیس از ذاکرین نجات المنک یا سیدی الكریم نجنا و خلصنا به حق بسم الله الرحمن ام ما یجیم و و یک جبو اما یجیم و مزتر و یک جبو اما یجیم و مزتر و یک جبو یا موجی اللهمزدرنی نجب و یا یا سلام زدند سلام زدگی یا حمید و به محمد یا علی بحق علی یا فاطر و بعد فاطمه یا محسن و الحسن حسن یا قدیم الهسان بعد حسین و المعصومین من ذرنیت الحسین اللهم عجل ولی الفرج و الله من انصاري و اعوانه اللهم انصر من نصر الدين واخزل من خزل المؤمنين اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا وجعلنا بینهما غانمين بفضلك به فضلک و رحمتک یا ارحم الراحمین به و